مسئله جمهوری ایرانی مسئله شیوه رویارویی با آرمان های متضاد ارجمند و مردمی انسان است یعنی چه؟ چگونه می شود دو ارزش برابری و آزادی را که متضاد به با هم در قوانین و در حکومت با هم آشتی دارد؟ این مسئله را, را حلش رو باید یه چیز چگونه می شود دو ارزش داد و مهر را که متضاد با همان در قوانین و حکومت آشتی داد وقتی انسان ها طبعا دو آرمانی را دوست دارند که با هم متضادن نمی توان آنها را دور ریخ یا پشت به آنها کرد بلکه این دو آرمان که برابر با هم ارزش دارم را یا باید به شیوهی در هر هنگامی از نوع آشتی داد چون یک فرمول ابدی برای آشتی دادن آنها نمیتوان پیدا کرد وای آنرژی یک کتاب و مقدس و با قوانین الوی یک تئوری نمیشود این تضاد همیشه متحول در اجتماع را حل کرد این است که خرد انسان ها در اجتماع باید در هر هنگامی از نوع در باره حل آنها بیندیشند و راه پیوند دادن آنها را در آن هنگام در قوانین و در حکومت و در اقتصاد بیابند این کار را فرهنگ ایران به اختی خرد شاد بهمنی هر انسانی در اجتماع و گذار خرد بهمنی یا خرد سنگی ما امروز وقتی خرد سنگی میشنویم میخندیم سنگیدن، هنجیدن، سنجیدن، هنگیدن اینها یعنی سنتز کردن ما کلمه سنتیز رو از اروپا وارد کردیم به انوانه کشف هگلی ولی خود ما اون استراحهی که داریم خنددار و مزخره آور میدانیم خرد سنگی یعنی خرد سنتز کننده. نه تنها یعنی خرد سنتیز کننده، یعنی همخردی یعنی همخرد شدن انسان‌ها با هم و سنت بودن خرد یک ویژگی بنیادی دارد و اون است که برای شناختن چیزها یا انسانها یا پدیده ها از هم آنها را از هم پاره نمی کنند بلکه در شناختن تجزیه نمی کند خرده این خرده که این فرهنگ ایران برای ما در شناختن تجزیه نمی کند بلکه آنها را به گونه ای از هم مشخص می که پیوندشون را نه تنها با هم حفظ کند بلکه آن پیوند را بپروراند از هم می ولی به هم پیوند میده. این اندیشه فوق العاده بزرگ است از این رو نماد این اندیشه موهای سر این خدا بحمن بود که در میانش فرق میگذاشد تارو که داشت و پیراهنی بیدرد میپوشید پیراهن بیدرد یعنی جامعی که هیچ, هیچ خدا شکاف ندارد و در همه جا به هم پیوسته شد این علامت بهمن است. جامعه در پرهنگ ایران سنتز تار و پود است هنگیدن تار و پود به هم است این نشان این خداست، نشان مهر است خدا هم با انسان تار و پود می شود موهای اصلی خرد فرق داشت یعنی بهمن اصل خرد موهاش فرق داشت گذیمه موها را به دو توشانه می کنن و هر بخش رو از بخش دیگر مشخص می‌سازند ولی برای این کار سر و جومجمه را از میان دو شبه نمی نمی‌کنند این تاروک میان دو بخش این تاروک میان دو بخش قرار می‌گیرد و بهمن درست اصل میان بود اصل از هم به طور مشخص می‌سا که از هم پاره نشود به دین علت واژه مرض در فرهنگ ایران جایی نیست که دو چیز از هم جدا می شود مثلا تعریف تعریف هر چیزی را کردن به معنای آن است که مرز بندی کردن به چیزهای دیگر شما یک چیز را موقعی تعریف میکنید که مرز آن را از چیزهای دیگر مشخص سازید این مرز در اروپا حد یعنی ببرید یعنی جدا کنید تعریف در فلسفه یعنی جدا کردن یک پدیده از سایر پدیده یعنی که با تعریف یعنی ارپان شناخت تجزیه شبه می شود درست به همه بر این مرز در فرهنگ ایران جایی نیست که دو چیز از هم جدا می شوند بلکه مرز درست به معنی جایست که به هم متصل می شوند خدا انسان را می آمور زد این آمور زیدن آ مرزیدن است به معنای این است که با انسان متصل می شود وقتی می خدا خدای پلانی را بی یعنی در فرهنگ ایران یعنی این است خدای با او هماغو چون تو تون همون مرزیدن است پس بنابراین ببینید این واجه ها بسیار با مفاهیمی که ما از قرد میگیریم پردارد تعریف تعیین حد یک پدیده از سایر پدیده ها شما یک فلسفه را که میخواهی محتویاتش را مشخص کنید بایستی مرزوندی بکنید با فلسفه مکاتب دیگر این را در فرهنگ ایران یعنی جدا بکنید ولی درست در فرهنگ ایران این مرزیدن حد معنای دیگر داشت این اندیشه یعنی در جدا کردن ما در جدا کردن حتی فکر از افکار دیگر سعی نمی کنیم از اونها ببریم بلکه سعی می کنیم نقاط پیبند را با اونها پیدا کنیم این اندیشه شناخت که مشخص کردن از هم بدون تجزیه کردن بدون از هم بریدن بدون شکاف دادن بنیاد خرد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی انسان در ایران بود این خرد بهمنی یا خرد حخامنی حخامنی یعنی چی؟ حخا به معنای به معنای دوستانه اندیشیدن در اندیشان، در اندیشیدن به هم ورد کردن است بهمن که اصل خرد در هر انسانی است چنین خردی بود بهمن نه تنها خرد است بلکه خرد شاد است این تفاوت است ایرانی خرد را بنیاد اجتماع و حکومت نمی بلکه خرد شاد را خرد خرد بهمن خرد بزمیست اسم دیگرش بزمونه یعنی اصل بزم خرد انجومنیست هم خردیست هم اندیشیست در بز در انجمن، در هم خردی در هم اندیشی هم اندیشی میشکوفد بهمن خردی نیست که در خونج کتابخانه یا در انزوا بیندی شد بهمن در مغز یک نفر در جامعه نیست در نه مغز شاه نه مغز رهبر نه مغز پیشوا بلکه در کل اجتماع هست. هم همخردی آسان خرد سنگی هم به معنای خرد سنتز است، هم به معنای است. این ویژگی را مفهوم سنتز ندارد این خرد نه تنها خرد است که اسپکولاتی از خودش می بلکه خرد سامنده خرد اداره کننده گیتی. این ببینید خرد در انسان از بون خرد سامانده خرد آراینده خرد اداره کننده است یعنی هر انسانی حق شرکت در ساختار قوانین و ساختار حکومت دارد معنای این است بینی که از این خرد بهمانی پیدایش مییابد اون را داد داتر میگفتن داتا همون کلمه داد این بود که بهمن که همان هوشنگ شاهنامه است را خیلی راحت است هوشنگ شاهنامه هوشنگ چی است جشن ساده جشن ساده جشن بهمن است بهمن است که آذر پروز است آذر پروز یعنی آتشی که از او روشنی پیدا می‌شود این در هر انسان این آتش جان هست پیشداد کلمه پیشداد که پرداته باشد خردی است که قانون اساسی را در اجتماع می‌گذارد که نظم و اداره حق را از خود می‌تراود چنین خردی که میسنگد میسنجد میهنجد یعنی به هم میکشد به هم می هنجار با هم میکنن سنتز میکنن طبعا در تقسیم رفاه و امکانات و خوشیها ها همون اصل از هم پاره نکردن رو دنبال میکنن در اجتماع رفاه و امکانات و خوشی در سراسر مملکت بین همه افراد باید بتونین که از هم پارکونه پخش بشود حکومت کردن باید در بین همه پخش بشود همه با هم حکومت میکنن این ویژگی خرده هست. همه با هم حکومت کردن این چیز نام امروزش جمهوری نام اصلیش در ایران هزارها پیش از واجه جمهوری خرم بوده است پس میپرسیم که چگونه شد که در داستان فریدون و ایرج تزاد میان داد و مهر پیدا شد فریدون که در انجمن خردمندان جهان را پخش میکند چرا درچار گرفتاری شد چه نقصی در این تقسیم بود که ایرج پسرش بر ضد این اندیشه برخواست گفت بدون مهر داد نمی شود کرد و نیاکانم و اصل فرهنگ ایران مهر بوده است. ارز ایرج این خدای ایران هست ارتاست اینجا شکل بنیادگذار اولین حکومت را در ایران در شاهنامه دارد و این فوقالاد مهمتر است این سمبول کوروش است که امروزه با آنچست بیدن چون که نخستین بنیادگذار فرهنگ ایران نخستین شاه استوریه ایران ایرج است ارتافت این چیز، این میگوید داد باید بر پایه مهر باشد از دادی که بدون است از قانون و حکومت و نظم و حقوقی که بدون پیوند انسانی میگذرد میگوید این ایران این با این اندیشه شاهنامه شروع می شود حکومت ایران شروع می شود ایرج پسرش ضد اندیشه پدرش برمیخیزد و دو پسر دیگرش که سلم باشن باشند بخشای خود را نمی پذیرن. می میگویند ما سزاوار بیشتر از این هستیم مسئله آن است که فریدون و انجمن خردماندان خرد بهمنی را به کار نیانداختند بلکه عقل تجزیه عقل تجزیه و تحلیلی را به کار انداختن همون راسیونالیته اروپا را تا به هر کسی به طور جداگانه به اندازه سزاواریش بدهند اون ش... هم آنچه را باید بدهند از هم پاره میکنند و هم برادران را که این بخش های را باید بگیرند از هم پاره میکنند تا برای خود اینکه به هر کدام باید قسمت مشخصی از این پاره برسد. این است که هم اون چیزی که باید قسمت به شود از هم پاره میکنند. هم دیرندگان قسمت را که جامعه جهانیست از هم پاره میکنند. این در هر جامعه در داد این صورت, صورت میگیرد. این بود که نظم و عدالت و حق به هم میخورد. اولین آزمایش بنیادگذاری داد با فریدون به واسه همین نبودن این خرد به هم میخورد. و به فاجعه و تراجیدی کشیده می شود و این به تضاد داد و مهر کشیده می شود که فریدون در پایان سر سپسرش سپ را در, پا در پایان اون پیش خود میگذارد و می گرید. و برای این اقدام بزرگی که برای ایجاد داد در دنیا کرده است فقان و ناله می کند و نمیداند با چه کنه داد و مهر نمی‌تواند با هم پیوند بده در فرهنگ ایران مانند ادیان ابراهیمی تضاد ایمان و محبت, محبت مطرح نیست بلکه تضاد داد و مهر مطرح است داد و مهر موقعی متضاد می شوند که خرد بهمنی انسان ها در اجتماع با هم راینده شد یعنی وقتی جمهور ملت با هم در حل این مزاله در هر هنگامی نمیانده در عدیان ابراهیمی تضاد ایمان با محبت است که در مسئله ابراهیم و قربانی از می شود برای همین خاطر این یک مسئله بنیادی میان همه این ادیان است و این ادیان را به هم این ابراهیم و قربانیاش گره می‌زند. این چیز در این مسئله قربانی این مسئله تره است ایمان به اراده خدا که طبق دانش بیکرانش تصمیم می‌گیرد در مقابل مهر به فرزند که نماد همه پیوند‌های انسانی در این گیتی است می استاد. این همون مسئله است که امروز خیلی ناشیانه و کودکانه به عنوان سکولاریته بین روشنفکران ما مطرح است. با ایمان به خواست یهوه و الله و پدر آسمانی باید از مه یعنی چی؟ از همه گونه پیوندها دست کشید. از این پس انسان حق ندارد از خرد خودش پیوند بدد. از خرد خودش ساتومن بده قانون ایجاد کنه مردم را اجتماع بسازد این اجتماع سازی که اجتماع میسازن خرد انسان ها ولی اینجا حق ندارد دیگر. اینجا فقط خدا اجتماع میسازد این حق با این قربانی از بین گرفته گرفته میشود از این پس انسان حق ندارد از خرد خودش پیمان بده اجتماع بسازد بلکه همه پیبند همه سازمان همه انتظاماتش حکومتش تابع خاص و علم یهوه و الله و پدر آسمانی باید باشه هر جا که دانش و خاص خدا این دانش بیکرانه تصمیم بیاره باید از آن پیبند دست کشید و سرش را برید یعنی از آن پیوندی که ما انسان ها در این گیتی میخوان. اون دانش خدا عرجهیت دارد یعنی چی؟ یعنی یک ارزش مهر تابع چی میشود؟ تابع اراده خدا میشه. یعنی تضاد داد و مهر از بین میرون. یعنی محبت و پیوند و همه سادون ها و پیوند ها و قوانین تابع اراده به علم او هست ببینید اینا خیلی در این انتقادات از قرآن وقت سر وقت بیهوده صرف جزئیات می شود این جزئیات ولو اینه که محمد اینو آن رو در امر نه کرده باشد مسئله اون اندیشه اساسی است که حتی این جزئیات رو میتوان به کنار بزند وقتی در قلبها و در فکرها زنده است این جزئیات کار ندارد وقتی داستان نوح هست که همه دنیا حق زیستن ندارن و همه را خدا برباد میدهد و میکشد چون که ایمان ندارن این یعنی دنیا را می‌شود و تمام شکنجه داد و نابود ساخت. برای خاطر که فقط با ایمان حق ازیستن دارن این تمام اندیشه ها و امرو های خدا و اینی که یک خرده رحم بکنید اینها را همه را زیر پا میگذارد اصل رو گرفت این امرو نحه ها و فرها و در گوشه از یک آیه پیدا کردن و رحم و فران اینها هیچ هیستامر ای ندارد خرد انسانی دیگر به ابتکار خود نمیتواند سنتز کند نو آوری کند و باید تن به شیبه پیوندهایی بدهد که خاص خدا میپذیرد این است که همه گونه پیوندها و مهرها تابع خاص حق میشوند این معنای عید قربان است این را چندان ناچیز و بیهوده و یا به عنوان یک رسم نگیرید این تبالور اون اندیشه که ما امروز به عنوان سکولاریته که معنایش را دقیقا نمیفهمیم میکوشیم پیاده کنیم و نمیتوانیم. چونکه چون که اون همون ایده عید قربانی قربانی بر ضد تمام این افکاریش که سکولاریته بیان میکنه چنین اندیشه ای در فرهنگ ایران محلی از اعراب نداشت چون این سخن به معنای نفت یا ترد خدای ایران بود خدای ایران برزد هر گونه بریدن و از هم گسستنی این گسوند را که سرش را میبرند یعنی بریدن از دوستی به پسر بریدن از همه پیوندها وقتی کسی دام در راه الله و مسیح و یهوه میگذرد از همه این پیوندها ها پاره می کند این پیوندها ها هیچ کدام ارزشی ندارد او معلوم می کند که تو در کجا بایستی جوری پیوند بدهی خود در فرهنگ ایران خدا خودش اصل مه یا همون بهمن خرد بهمنی یا ارتایی در انسان هست اصلا نمی تواند بریدن را تحمل کند اجازه و ایدان نمیده هد. خودش در همه گونه مهرها و پیوندها ها تجسم مییابد در فرهنگ ایران خودها تخ میستی در همه انسان ها بدون استثنا افشانده شده است. ترک و ولوچ و احوازی و و سنی و یارسانی و در دوستی و باهایین و اینها ندارد. خودش تخ نیست که در همه انسانها، ها شده خدا خاصی و دانشی نیست که فراسوی وجود انسان باشد تا به خواست و دانش و جداگانه او ایمان آورد و آن ایمان بر ضد کشش انسان به دوستی و مهر به اینوان باشد. اصلا چنین چیزی؟ با مفهوم خدای ایران در تزاده است کسی با قبول الله و یهوه و پدر آسمانی مفهوم خدای ایران رو دور می ریزد خرد و نیروی پیوند، دهنده و همخردیش در جان خود هر انسانی هست ایمان به خواست خدا که دانش کل دارد و خارج از انسان است. این با فرهنگ ایران جور در نمی آید. در فرهنگ ایران خدا خوشه است که تخمش در هر انسان است و از این گذشته صندوق کل معلومات نیست بلکه خرد جوینده و آدماینده است در هر تخمی این خرد جوینده و آدماینده در انسان هست اخودا اصل جست جست نه علم به معنای معلومات دانست از پیش دانسته و انسان انسان ها همون خوشه خدا هستن یعنی در بهم پی خودشان خدایان، خودشان شاهن مسئله تضاد و دادومه مسئله بهم خوردگی خرد بهمنی خود انسان ها مسئله است که چگونه باید این خرد بهمنی را در همه انسان ها از نوع بسیش کرد به کار انداخت انگیخت پدیدار ساخت، چگونه این همخردی، خرد سنگی، یکی سنتز میکنه، یکی هم همخردیست، هم همندیشیست، اینها را چه اثر باید برنگیر؟ مهر را که همه پیوندهای انسانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشد، واقوزار با به خواست خدایی در فراسوی جهان، و پیامبرش و ولی امرش و امامش و خلیفهش نمی و تابع اراده آنها نمی سازد تا ناچار شود منتظر امام زمان یا مهدی یا مسیح یا ماشیا بنشیند. بلکه فرشگر به این خرد رو می خواهد. از نو سبز شبیه خرد بهمنی انسان در اجتماع این ادیان و خدایان نوری این خرد بهمنی و خودجوت انسانی رو کبیدن، پوشانیدن، تاریک ساختند از این رو ما در اجتماعات خود گرفتار تضاد و دادومه یا تضاد ایمان و محبت هستیم